مدبی قومی رویول اول 644 دنیا چاه پریشانیست در نبود شمس از پس رفتنش روحم هم روزم بی خورشید مانده شب خواب به چشمم نمی آید. روز در خانه بی تاب و قرارم نه اینجایم جایم نه جایی دیگر به شبهی ماننده ام در میان جمع از دست همه دل از دست همه آسیم، دست خودم نیست. چطور میتوانند به زندگی ادامه دهند، طوری که انگار اتفاقی نیفتاده. مگر زندگی بی شمس تبریزی ممکن است. شب همه شب از شفق تا فلق یکی و تنها در کتابخانه خانه می نشینم و هیچ نمیگویم. تنها به شمس میاندیشم اما چون شمس در نظر من مجموع همه چیز و همه کس است در اصل به کل کائنات میاندیشم. حرفهایش از فکرم بیرون نمی رود می گفت روزی میرسد شاعر زیباترین شعرهای های عاشقانه مینامندد در همه دنیا پرآوازه میشد که این روزها تنها کارم سکوت کردن است خاموش میگویم به خودم اما هر قدر هم سکوت بکنم کلمات سینه ام را می شکافند و بیرون میآیند آیند از تنم مگر شمس همین را نمی خواست از روز اول مگر نمی‌خواست از من شاعر بسازد اما فکرش را هم نمی‌کردم برای رسیدن به این هدف ترکم بکند زندگی من دور دائم است خواه به قدر کوهی کلام خواه به قدر کاهی خورد هر دشواری که بر ما وارد می‌شود هر ناراحتی که می‌کشیم در نقش کلی جایی و کارکردی دارد مبارزه کردن شرط انسان بودن است مگر نمیگوید کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند به راه های خیش هدایتشان می کنی؟ اگر در راه گذر از نفست در راه یکی و برابر دیدن همه در راه دوست داشتن آفریده به خاطر آفریدگار قدمی هرچند کوچک برداری مطمئنا پاداشش را میگیری. اگر به وجود نظام الهی باور داشته باشیم میدانیم که تصادف در این نظام جایی ندارد. دو سال میگذرد از روزی که نزدیک کاروان سرای شکرچی به هم برخوردی آمدن شمس تصادفی نبود که رفتنش تصادفی باشد شمس روزی گفت باد نیاورده است مرا که باد ببردم از زندگیت. بعد حکایتی تعریف کرد گفت در زمانهای گذشته صوفی زندگی میکرد صاحب کرامت. از کرامات او این بود که نفسش نفس مسیحایی بود. این صوفی فقط یک شاگرد داشت. مشتاق نبود شاگرد و مرید بیشتری داشته باشد. اما شاگردش طور دیگری فکر میکرد. میخواست همه در برابر عزت و قدرت استادش انگشت حیرت به دهان بگسند از این رو مدام التماسکنان از او میخواست طریقتی درست کند و مریدان زیادی به دور خود گردآورد. سرانجام صوفی میگوید: ای والله حالا که این قدر اصرار داری خوب انجامش بدهیم آن روز به بازار می رود. در یکی از دکه ها آب به شکل پرنده می فروختند. صوفی به آنها می دمد. بادی بر می خیزد و همه پرنده های آب نباتی جان می گیرند و به پرواز در می آیند. زبان همه بند می و دور صوفی جمع می شود. همه میخواهند مریدش شوند. رفته رفته آنقدر مرید و شیفته پیدا می کند و چنان دورش شلوغ می شود که شاگرد قدیمی دیگر نمیتواند درست و حسابی استادش را ببیند. سرانجام روزی فرصتی میابد و به استادش میگوید: سرورم دور و برمان خیلی شلوغ شده. اطرافمان همین جور آدم ریخته. قبلا خیلی بهتر بود. کاری بکنید. خواهش می کنم همه را بفرستید بروند. صوفی میگوید: ای والا حالا که اینقدر اصرار داری، خب انجامش بدهیم. روز بعد صوفی هنگام موعظه بادی رها کند. مورید ها در عجب می شوند. با حالت اشم از آنجا می روند. فقط شاگرد قدیمی میماند. استاد میپرسد، فرزند، تو چرا با بقیه نرفتی؟ مرید جواب می دهد. سرورم، من با باد اول نیامده ام که با باد آخر بروم. شمس تا امروز هر کاری کرده برای کامل شدن من بوده چیزی که مردم نمیفهمند همین است آلمن دیگه شایعاتشان را هم زد آمدن بر رگ حساسشان دست گذاشت حرفهایی میزد که به گوش آدمهای عادی همچون دشنام میرسد حتا آدمهایی را که دوستش داشتند سردرگم و مایوس می‌کرد. همه کتاب‌هایم را به آب پرت کرد تا بتوانم دانه‌های دانشی را که با عقل و منطق به آن رسیده بودم و گمان می‌کردم جواهرات قیمتی‌اند، چناری بگذارم. همه فکر می‌کنند او منتقد آلمان است. اما کمتر کسی میداند که خودش استعداد شگرفی در تفسیر دارد. شمس در علم سیمیا و نجوم و رصد و الهیات و فلسفه و منطق متبهر است. اما علمش را از چشمهای کور پنهان می‌کند. جوهرش فقیه است اما مثل فقیر رفتار می‌کند. شمس در خانه من را به روی روسبی تو کار باز کرد. مجبورمان کرد غذایمان را با او قسمت کنیم. یادمان داد به شایعه ها گوش ندهیم و دشنام را با دشنام جواب ندهیم. مرا به میخانه فرستاد تا هم صحبت مستان شوم. یک بار خواست، جلوه مسجدی که در آن موعظه میکنم دست گدایی به سوی مردم دراز کنم برای اولین بار در عمرم خودم را جای گدایی جزامی گذاشتم یک بار هم از چشم او نگاه کردم به این دنیای دو این را هم فهمیدم که چگونه دیده میشوم از جایی که گدا نگاه میکند شمس مرا از شیفتگانم و از چاپلوسانی که بیان که خود متوجه شوم دوره کرده بودند و حتی از حکام حامیم جدا کرد با پایین ترین لایه های جامعه آشنایم کرد. در سایه او آدم هایی را شناختم که اگر او نبود شاید هیچ وقت نمی می گفت هرچه بود میان فرد و رب هست خواه شهرت خواه مقام و ثروت، خواه تعصب بیجا جا هرچه سخت شده هرچه سنگ شده هرچه از عشق دور شده باید از جا به درآید. می گفت باید محدودیت ها را از ذهن پیش داوری ها را از دل پا کرد تا همه بفهمیم یکی هستیم و برابری. می گفت آنچه باید باقی بماند عشق الهی است. عشق الهی. فقط به خاطر او از آزمونها گذشتم. از عرش به فرش قلتیدم. از حالی به حالی درآمدم. حتی در چشم صادق ترین مریدانم، به انسانی آب باخته حتی دیوانه بدل شدم به خاطر او مزه تلخ تنهایی بیچارگی سرزنش تحقیر و سرانجام جدایی را چشیدم لطف و سالوس جهان خوشلقمه است. کم ترش خور کان پرا تشلقمه است. مادهت گر گوید بر ملا روزها سوزد دلت زانسوز لیک نن ماید چو شیرین است مد بد نماید زانک تلخ خدا هر روز و هر لحظه میپرسد به یاد دارید عهدی را که پیش از فرستادن تان به این دنیا بستین گنجی ناشناخته بودم خواستم شناخته شوم مگر نمی بینید بزرگی و زیبایی سحمی را که در این شناخت دارید بیشتر اوقات آماده جواب دادن نیستیم این سوالها میترساندمان می کند. اما خدا صبور است میپرسد صبر می کند دوباره میپرسد دوباره صبر می کند اگر این زخم دل بخشی از آزمونم باشد تنها آرزویم این است در پایان این راه غمانگیز و تیره و تار حسرت به پایان برسد و من به شمس برسم آمادهم هم همه چیز را کتابهایم، موعزه هایم، پسرهایم، همسرم، همه هستیم را رها کنم، فقط یک بار دیگر دیدهام به نور جمالش روشن شود. دیروز که را گفت، رفته رفته شاعر می شود. چه شگفت؟ هیچگاه به شاعرها اعتماد نداشتم، اما این بار دم نزدم. اگر زمان دیگری بود به حرفهایش اعتراض می کردم اما دیگر غیر ممکن است قطره قطر, قطر مصرا می چکد از دهانم بی توقف بی آن که خود بخواهم شنوانده ها می توانند بگویند شاعر شده هم. بله سلطان ملک سخن اما در اصل این شعرها از آن من نیست. من صرفاً واسطه حروفم. مثل قلم و دواتی که کلمه را می نویسد آنگونه که به او امر می شود. مثل نیی که نوایی را می نوازد آنگونه که در او دمیده می شود. من هم وسیله وسیله. سهم خود را ادا می کنم. من سرور کلمات نیستم، کاتبی سادم، هرچه به دلم زمزمه شود، آن را می نویسم، اما زمزم کننده من نیستم، خیالت هر دمی اینجاست با ما، الا ای شمس تبریزی کجایی؟